من, من از تنبیه و بدیهای پیری بتوانم بره. بار ایلاها. من از عذابیت و زخو عذاب خبر بتوانم بره. بر بر رادیو صدای خلافات. رادیو صدای سرگار. نهاد این. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لحظات خبری الله خلافت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 السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو شنواندگان مسلمان و مومین رادیو صدای خلافت به بخش خبری ما خوش آمدید با امید اینکه که روزهای ماه مبارک رمزانتان به خوبی سی پری گردد امروز پنشم به هجده همی رمزان سال 1437 تجری خمری توجه شما را جلب می دارم به آخرین تحولات و پیشرفی های دولت اسلامی و این هم سرخطی چند خبر صلید صلید. حلاکت شماری از کردهای ملحد در من بیچ سه مقام نظامی روسیه در نزدیک رقه کشته شدند کشته و زخمی شدن 25 تن از بسیج مردمی در بغداد و انهدام دو تانکی نوی ابرامیزی آمریکا در بیجی صلیل الصواری و و این هم خبرها تازه خبرها از شهر مینبی چاکیس جنگنده های آمریکایی به طور اشتباهی اکتجموی نیروهای کردی را در شمال این شهر آماجی بمباردمان قرار داد خبر میگوید که در این حادثه تعدادی از کردهای ملحد کشته شدند در همین حال یک حمله تهاجمی همین نیروها در نزدیکی روستای 4کیلو در شمال همین شهر بر ناکامی انجامید در حمله متقابل نیروهای دولت اسلامی 5 تن از کردهای ملحد کشته شدند در خبری خبر دیگر آمده است که نیروهای دولت اسلامی رستای تلیاستا را در شمال شرقی شهری مزکور تصرف کردند. خبرها از شهری رقه آکیس که سه نظامی بلندپایی روسیه در درگیری های جاری در جاده اسریا و رقا کشته شدند. خبر میگوید که این سه نظامی روسی در اثر انفجار یک ماینی جاسازه شده، که یک موتر حامل آنها را هدف قرار داد کشته شدند این سه مقام پای پس از آن کشته شدند که نیروهای دولت اسلامی یک حمله گسترده را به خاطر جلوگیری از پیشروی های نیروهای نظامی سوری و شبه نظامیان شیعه در جاده ارتباطی شرک اسریا و طبقه در حومه رقه انجام دادند وبسایت های دولت اسلامی تصاویری از این نظامیان و کارت شناسنامه هایشان را نیز به نشر خبرها میگوید که نیروهای دولت اسلامی دو تن از نیروهای نظام سوری را در جریان درگیری‌ها در شمال شرقی حما اسیر کردند. آژانس خبرگزاری آماق گزارش داده است که در جتگان ها در شمال شهری بیجی دو نوی نو یابرامز نیروهای راقی توسط موشک هدایت شونده از بین رفته است. یک حمله کننده استشادی کاروان نیروهای بسیج مردمی را روز گذشته در پوسته تلاشی سلام واقع در جنوب بغداد هدف قرار داد خبرهای ابتدای میرساند که در اثر این حمله 25 تن از اساکیری بسیج مردمی کشته و زخمی شدند یک منبعی صحی از شهر رقبه خبرگزاری اماق گفته است که در بمباران جنگنده های روسی حوالی روز گذشته که منازل مسکونی را هدف قرار داد 32 فرد ملکی شهید و 150 تن دیگر زخم را داشتند در همین حال جنگنده‌های آمریکایی ساختمان های مسکونی را در همین شهر هدف قرار داد که در نتیجه 5 کشته و شماری زخمی به جا ماند که در بینشان زنان و کودکان نیز شاملند. و خبر اخیر این که یک درگیری میان گروه های و نیروهای های دولت اسلامی در نزدیک رستای دودیان در ولایت حلب رخ داده است خبر می گوید که در این درگیری چهار معاریز سوری کشته و یک واسطه نظامیشان از بین رفته است شنوندگان محترم این بود آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی از توجویتان جهان سپاس و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لحظات خبری صلاح خلافت قیام و حجت و پرسیش های داغ قائم کردن حجت قبل از قتال شنوانده های رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یک بار دیگر شما را به برنامه قیام و حجت خوش آمدید میگم امید است که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید باز هم در برنامه امروز خود استاد حمزه خراسانی و استاد احرار را با خود داریم چون در روزهای نزدیک عملیات از طرف مجاهدین در مختلف نقاط صورت میگیره میخواییم که بالای ازی بحث کنیم که کدام عملیات که در کابل و در امریکا و در دیگه جاها انجام داده شده که نتیجه زیر مجاهدین گرفته یا خیر از استاد حمزه می پرسیم که استاد اگر راجع به نتیجه عملیات که در کابل چند روز قبل که برادر ما احمد که نام اصلیش عرفان بود انجام داد دمی باره اگر بر ما کم معلومات بتیم که چقدر نتیجه مثبت داد سوال بسیار جالب سلسله استشادیه که بلخصوص ماه مبارک رمضان صورت ماه مبارک رمضان یکی از ماهای فتوحات میشه برای مجاهدین در یا آخر یکی از برادرانمان در شهر کابل استشادی انجام داد که استشادی در خود پایتخت افغانستان شهر کابل صورت گرفت استشادی بالای کاروان یا بالای موتر حمل و نقل مساکر نیپالی صورت گرفت که اسواکری نیپالی در مجموع در افغانستان کشور امریکا عقد قرارداد کردن تایی که امنیت خارجی بیسای امریکایی را بدینه تامین بکنن والحمد لله شادی که صورت گرفت یک زنگ خطر بسیار یا اشدار بسیار بزرگ به خود امریکا و تمام جهان بود. کسایی که در افغانستان به خصوص در شهر پای... کابل پایتخت افغانستان فعالیت نظامی دارن و ان شاء الله در دا کلشان داخل شد و باس سلسله استشادی ان شاء الله ان قریب به دګم خاطر رسید. ایستشادی ک صورت گرفت بواسطه مجاهدین خلافت اسلامی صورت گرفت و ترتیب تنظیمش از قبل شده بود و انشالله در آینده هم ان قریب دګ استشادیا خاطر صورت گرفت. برادر من الفان الله که مستعار نامش احمد بود و ایست صورت گرفت. ایست شادی ک صورت گرفت ان شادی بوده و سلسله استشادی خلافت اسلامی د ماه مبارک رمضان بود این بعد بگویم که در آخر میست شادی که مجاهدین خلافت اسلامی انجام داد نهیس شادی بلکه دیگه دگه شادی که در افغانستان در سر, سر نقاط یا ولایت افغانستان صورت میگیره ایرا امارات نامنهاد اسلامی که امارات شیطانی معامیت رو خطاب بکنه ایره کلشه از طرف خود اعلان میکنه بسیار جالب از در حال که سیاست و پلیسی امارت در عملات شادیش در افغانستان تاره به شککو بحاسه برنامه ها اساس اهداف اسلام آباد یا پاکستان اداره آیسای پاکستان می باشه اداره آیسای پاکستان هرگاهی که مناصباتش با حکومت افغانستان تیره باشه بعضی خوانه در ایجا شکل نیست که نه دا داخل افغانستان نفوز دارن و به او اساس وقتی که تیره میشه روابط سیاسیشان با کابل بلاخره بعضی استشادیه انجام میدن که استشادیهشان به اساس نیاز و بساس ماهیده که به پاکستان دارن انجام میتن امی عملیات استشهادی رو که مجاهدین خلافت انجام میتن چی علیت است که امارت نامنه خود میگیرن؟ این بسیار نقطه جالب شما ذکر کردین امارت نامنهات اولا که اهداف زیادی نیست که تدبیق حدود الله در تراتر نقاط افغانستان باشد در تمام دینه. اونا در منشور خود واضح نشته که ما گفتن که ما در افغانستان حکومت میکنم اما یک حکومت سیاسی میباشم و مناسبات ما به تمام دنیا خصوص به یا ممالک همجوار دوستانه باشه. ظاهرا با امریکا میباشم و حال باطنن با امریکا مینا دوستی خود دارن که در دا معلوم شد که نه د قطر با هم مذاکره کردن ده چین مذاکره کردن بالاخره در روسیا و در پاکستان چندین بار با هم مذاکره کردند که ده نماینده امریکا و تمام دنیا او موجود بود اینا به ای خاطر ده و آخر نزد با پالیسی ای, ای سای که برای واضحو آشکار و فائدہ است که خلافت در تمام دنیا ان شاء الله مدنی است و تمام دنیا را نظام نظام اسلامي ان شاء و ذریل فرصت به دست میگیره ده سلطه خود با خاطر به خاطر که بتونه ایسای خوش بسازد و در این حال از مردم مخشوش بسازد و از, از های خلافت اسلامی کمی مردم رو بدور بسازه هر هر عملی که از طرف خلافت اسلامی مجاهدین خلافت اسلامی صورت می‌گیرند و ربع زم خود می‌گیرند. این بی معنی است که با میdia کفی و تاغوتی اینا روابط بسیار تنگاتنگ دارند. بی ای اساس اینها هر عملی که خلافت اسلامی انجام می‌ده اینا میگن این ما انجام دادیم. تا اینکه مردم از هان آمار بی مخشش بسازن که خلافت اسلامی فعالیتش محدود است ولی برعکس خلافت اسلامی ر وسیع است و در تمام ولایات افغانستان در تمام نقاط با همه کفار با همه تواغید در جنگ قرار داره تا اینکه نظام الله در تمام دنیا تدبیق همه عملیات استشهادی که در شار کابل و در بعضی جاهای دیگه صورت گرفت قبلا امارات عملیت را انجام میدادن خود زمانی که دیدم میشد اکثر مردم عوام از بین میرفت در این عملیات که خلافت اسلامی در نقاط مختلف انجام داده برای مردم عوام کدام zarar رسیده یا خیر خب اول جزء اول سوال شماره 8 تور جواب داده شده که گذشته تمام عملیات که از طرف هم نهاد انجام میدادن این به اساس مواهدی که بین پاکستان بوده صورت می گرفت در اوایل اینا تمام کفاره مورد حمله قرار نمیدادن بعضی بعضشان اینا معاهده کرده بودن که ما با شما غرص نداریم شما با ما فرض مثال بگیم اگر در اول سوالی سروبی بیس فرانسوی ها نه هرگز بالا بیس فرانسوی نا کدام عمله سشادی یا کدام عمله انجام ندادن در این حال بعضی عملات بسیار خرد ریزه کوچک رک انجام می دادن این تلفات نظامی که اساکر خارجی کفری بسیار کم می بود برکس عملات مردم عوام بسیار می بود فرض یک مسال به شما بتن شهر میمنه در شهر میمنه بالا یک از اربکی این عملی شادید انجام دادند کو عملیه در عین وقت چقدر مسلمان مسلمانان عوام عوام الناس اینه بشهادت رسند چقدر قدر عوام الناس از بین بردن یک عملی دیگه که در بالا والی و لوگر اینا در مسجد اینا عملی را انجام دادند که بالاخره از یک فرضن یک والی در مقابل چقدر عوام الناس تلف گرفته تلف شدند ولی الحمدلله لله الحمد عملیات استشادی که خلافات اسلامی انجام می اکثرا با کفار با مرتدین اونار به مورد عمله قرار میده اونارو با جهنم روان میکنه ولی زیادتر عملیات خلافت اسلامی انجام نمیته به خاطری که بعضی عوام الناس باعث تلف نشن اهداف خود بسیار منظم اهداف خود بسیار تعیین کرده بعضی رو انجام میدن قسمی که همه در جریان است و طریق رسانه های کفر و طاغوتی در تمامش نشر شده چند قبل شیرولی وردک با جهنم فرسا میشه میشد مجاهدین خلافت شما ببینید که چقدر اونا به یک مهارت خاصی با ما جاگذاری کرده بودن. که یک عوام ناس یک آدم ملکی یک آدم بی‌طرف وجذب نرفت تلف نشده صرف همین کسایی که توقید بودن و خود همین شیرولی وردک با موترش در شادی برابر شد که بعض بادیگارده دیگرده و خودش به جهنم فرسا شد جزاك الله خیر استاد حمزه خراسانى که در رابطه به عملیات استشهادی که در شهر کابل انجام داده شد بر معلومات داریم رادیو صدای خلافت رادیو صدای سنگر نو ایم خب استاد احرار، رسانه های کفری در قبال امی عملیات تبلیغات سوی را میکنن از طریق تلویزونا و رادیوها و کوشش میکنن که به یک نحو امی عملیات غلط جلوه برای بر مردم در رابطه به رسانه های کفری خود چی نظر داری؟ الحمدلله وحده و الصلاة و الصلاة لا نبی بعد فوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني قولي وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اما بات في ازين که بالای سوالتان متمرکز شو میخواهم بجانبه این تماس بگیرم که در گذشته همون قسم که در ماه مبارک رمضان بعض فوتوهات بیسار داماندار و گسترده متوجه اصحاب رسول بویجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم گردید در این عصر هم امان قسم که الله سبحانه و تعالی فرماید کسانی که ایمان آورده ایت روزه بر شما فرض شده چون که بر کسانی که قبل از شما فرض شده بود تا, تا باشد که پرهیزگار شد در پالوی ازی که بعض گپای اخلاقی در ناحیه تسکیه و در ناحیه احکامی که در نفس روزه متوجه مسلمان و انسان‌هایی که مکلف هستند در برابر دین وجود داره امی نفس روزه به ویژه برای کسانی که مقاتل است و در صف هستند و در ربات هستند و در مرزها علیه کفار و یهود و نصارا و مرتدین و مشرکین می جنگ پیام داره و در گذشته در تاریخ هم ما دیدیم که در عبد رمضان سال دوم هجری بود که الله سبحانه و تعالی در جنگ بدر یعنی دشمنان اسلام قسم در بین هم واقع ساخت که یک طرف دست به اسلحه پسر بود که مسلمان شده بود و دیگر طرف پدر بود که مشرک بود در صف ولی الله سبحانه و تعالی در یکی از آیات از پیروزی گپ میزنه و این پیروزی نفسش در رمضان بوده در پالوی دیگر احکام و در سال هشتم میجریم می دیدیم که در ماه رمزان بزرگترین فتحه که یک پیام بسیار گسترده و دامنه داره به ویژه مقیم همان جا که اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم برد که بر جهانیان یک مرکز به مرکز خیر و تنویر آموزه های الهی الله سبحانه وتعالی فتح در هشتمی هجری در نفس رمضان بر مسلمان ها. و در سال 658 تیجی بود که در برابر تاتار فرمانده ملک مزفر استاد شد که هم فتح و در مصر هم دیدیم که در برابر اسرائیل وقتی که قیام از صرف مردم مسلمان مصر صورت گرفت در نفس رمزان بود و در این هم بایمی ضعف و استداف و کمی هایی که ما داریم ما دیدیم که برادر عمر متین در نفس امریکا با او قدر تدابیر احتیاطی و تدابیر استخباراتی و امنیتی یعنی در قلب امریکا در مرکز لوتیز یک گزار و یک یک, یک وار بیسار قوی کرد که برای در تاریخ معاصر استخبارات سیایی یک درس باشد و در پالوی ازو دیدیم که شیروالی وردکم دمی ما از بینف یک مردار و یک بدبخت و در زمین ازو چند روز پیش عملیاتی که در دو جا یا در دو نقطه مختلف شهر کابل که امنیتی میلی خود بیسار پیشتاز میگرد در رابطه با وقایه همیشه دروخ میکنه و همیشه افوات پخش میکنه که ما دشمن وقایه کردیم ساد زراعی کردیم و ما دینیم که کسی بنامه تاولا فیزانی که یکی از مرتدین و یکی از احضای اینمی شورای نسل بلام بودک ای هم یک فتح کلان بر دولت اسلامی بود و بعد زو برادر ارفان الله یا احمد کسی که بالای اتباع خارجی یا نیپالی های کافر و مشرک که بر اونجا برادران مسلمان و ما را به نام اسلام بیشتر تعلق از یا به هندوئیسم استک در عمق کابل که قرار معلوماتی که ما داریم که 27 نفر این رسانه های عجیر و دروغ همیشه وقتی که 14 نفر خود از یوم میپذیرند و این کامیابی ها بوده که متوجه ما شو در کل ما در گذشته همینه گفتیم خیلی ها خوشحال هستیم کمی که خون که در نفس امارت در طول 14 سال هزار فدایی در خاک افغانستان شد ولی می‌بینیم که مو هر فدایی که فدای می‌کد پیش ازی معمول همین بود که پیش ازی که فدایی کنه وصیت می‌کد که دین وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله شاء که خون ما میریزه عقب باید دین الله تقویه شود دین ازان الله باشه فتنه چیزی که به نام شرک و کفر از, از بین بره ولی ما دیدیم که به یک نحوی از آنها چه قسم با خون ازی این های پاک که زیر چتر ملووس و غلام و نامنهاد پاکستانی به نفع استخبارات پاکستان یا مستقیم یا غیر مستقیم ولی خیلی ها خوشحال هستیم که ما کم عملیات میکنیم کم استعمال میکنیم کم استخدام میکنیم خو زیر اثر دین استخدام میکنیم در گذشته ما گفتیم که اگر به قول یک عالم که در عرب استک او میگه میگه اگر اگر هر کوشش و هر هر و جهد مجاهده که و هر تکلیف که به خاطر دین نباشه یک مسابقه حیواني استک الحمدلله عرکتی که زیر خلافت انجام میشه یا عرکت سازنده و یک عرکتی که زیر شعای دین است زیر انوان دین یا زیر انوان جهاد میشه و ما دیدیم که در گذاشته در کتابهایی که در پیوان به حکمهای صحیون یا پروتوکلهای حکمهای صحیون یا در نفس آثار که متعلق به یهود و حرکتهای تخریب آمیز یهود سمیه مسئله به انوان یک قضیه بسر جدی گرفته میشه و سرازی سرمایه میشه. که کوشش کنیم که میڈیا یعنی رسانه‌های جمعی و مطبوعات زیر اثرتون نگذر حتی در یک رساله من خواندم که همین یهودی‌ها وقتی که الهام میتن وقتی که توسی میگن کسانی که رسانه‌ها را کنترل میکنن حتی میگن میکن اون رسانه‌هایی که زیر کنترل ما نیست و استقلالیت داره را هم ما زیر کنترل خود میاریم یعنی به حد قضاف حزینه گزاری میکنن تا این را در کنترل خود ببره تعداد می هستن که میگن که ما شخصی و بی‌طرف و بی‌غرض هستیم هیچ کدام از یا بیترف نیست شما وقتی که میدیا رو کنترل کنید تقریبا در نفس کشورهای خلیج امیه هربه شیطانی یا هربه فکری که به یک حرکت بسیار مخرف در مقابل مسلمان تقریبا بیش از دوازده سد و پنجاه چینل که د او چه متعلق به های مشرک و مزخرف که خالص صوفیزمه پخش میکنه و مردم به جانب روحبانیت میخوانه که د او نه کتاب است و نه سیاست است نه نظامداری و نظام نظاره بخش اعظم از یا مربوط به او رادیوها و تلویزیونهای هستند که افکار سیکولاریسم یعنی دین سیاست جدا و بخش دیگرش متعلق به او فلم های مزخرف و نفس جامعه را در نظر گرفته فیلمهای اروپایی را دوبله کرده یا فیلمهای هندی را دوبله کرده نشر می میکنه. و ما در نفس افغانستانم دیدیم که بیش از 50 تلویزیون دنا در نفس وزارت اطلاعات و فرهنگ راجستر شده بود چند سال پیش که ما معلومات داشتیم و بیش از 20 یا 30 تلویزیون هم فعلا فعال است که 24 ساعت یا مواد مزخرف سمیر بر مردم افغانستان تقدیم میکنه و بیش از خود امی پی او ٹی یا همبستگی ملی 150 رادیو اف ام فعلا در نقاط مختلف برای سمچمل بر هر ولایت مختلف رادیو داره و ادمی رادیو هاست که دست بسیار بارز است و ما دیدیم که در نفس افغانستان یعنی امریکایی ها در 2008 دوز در یک کنفرانس نظامی در یک کشور اروپایی مسئولین نظامی باویجه مسئول ناتو و مسئول ائتلاف فزیلوف که ما در جنگ مسلحانه در برابر طالب شکست خوردیم و امروز ام شکست خود اینا بواسطه دمی مدیا و رسانه های جمعی و امی فیم های عجیر و مزدور چی میکنه کنترل میکنه ولی به هر صورت حقایق نمیشه که پتش کدامون قسم قسمی که, که صاحبان وظیفه شان جعل و تزویر و تحریف حقایق از همین قسم همین داستان رسانه های جمعی به یک حربی فکری در مقابل مسلمان ها همیشه کوشش کرد به طور مثال یک مثال زنده اگر یک جای یک استشهادی میشه و او در نفس یک کمر یک کو می باشه و در یک جای می باشه که نه اونجا گورک می باشه نه روبا می باشه نه شغال می باشه حتی انسان ولی امریکایی از اونجا عبور میکنه سرش استشادی میشه و نفس موتور امریکایی از بین میره باز که در میدیا اینا نشر میکنن که در نفس فلان جای یا در فلان کمر کو یک انتحاری شده انتهاری شده و به قواه اطلاف هیچ ضرار نرسیده و در اونجا یک زن و یک طفل از بین نفت حالا اگر از یا سوال کنی که در نفس کمر کود دو بجه شو در جایی که نه سگست نه انسانست غیر از مردم نظامی غیر از کسایی که سرحدار را نگاه میکنه غیر از کسایی که مسئولیت نظامی داره از جانب مرتدین یا کسایی که علیه از یا جنگای چرکی میکنه زن وجو چی میکن و ما دیدیم که دروغ به یک مثال زنده شمی است کمی عبدالظاهر قدیر مرتد خبیس که ادام میکنه که ما رحبر ملی هستم در نفس جلالباد در نسانه های جمعی گفت که رادیو در بیس امریکایی هاست و ما وقت جدیدی که رادیو زده شد از طرف امریکایی ها از طرف خود اشرف غنی مرتدی اسوی یک گپ زده شد که ما بلندترین دستاورد ما زدن رادیو بود و این به عنوان یک قضیه بسیار بالا و یک یک یک نتیجه نیکو به خود چکردن یا تلقی کرد و نشر گند و پس آنها وقتی که ما در نفس رادیوی شمشاد بود یا تلویزیون شمشاد پشمک کلپش پش استک وقتی که کتی خبرنگاره یعنی سخنگوی مخابرات گفت او خودش ادا که ما چیزی که در دسترس ماز به خاطر بند کردن رادیوی رادیو ای را اینا متحرک میچلانند و در نفس ما من و در نفس اینمی جایه کی نا هستن گفت که ما همه در دسترس ما اینقدر کانات است که پرازید پخش کنیم <تصفح> یعنی این می دو سه دلیل را که بگیریم در میابی که رادیو یا بلندگوهای عجی رو دست نشانه ای این نظام های مرتد تماماً به نفع غربی ها و به نفع دشمن یا به نفع کسانی که علیه دولت اسلامی هستند حتی در یکی از بیان ها که ما قبلا کرده بودیم گفته بودیم که ما در نفس و رضستان دیدیم که اماراتی ها یا کلانای امارات میگفتن که ما با با با مرتدین پاکستان ماهده داریم امی ما با مرت... ما ماهیده داره میده اطور رقم تحریف کردن وکت و پست کردن و آوردن او را از او یک ایعلان جور کردنن تا مردم قسم بده که دولت اسلامی هم با یکی از کشورهای های مثل پاکستان افغانستان مثل ایران چی داره ماهده داره؟ الحمدلله ما در سنگر دوستی با الله و رسول و برایت از تمام کفار همان قسمه که در گذشته در بنا ما گفتیم که آافستای ه حالا در از بیان خود گفتم که اگر یک منمی داشته باشیم زاویش قسمه برابر میکنیم که یک مرتد افغانی رو بکشه یک مرتد پاکستانی رو بکشه و یک کافر, کافر اصلی یعنی یهود و نصاره رو بکشن و امروز هم ببینیم که همین یک تعداد مردم های لوبالی و اوباش و بی فکر و بی رسالت و بدون هدف که عوام استک تات توضیری می میدیای کفری رفته و قضاوت های غیر عادلانه را نسبت به عملیات ها و نسبت به فدایی ها و نسبت به اهداف رک ما میکنی میکنه وزیر اثر دین تارجت میکنه مینا چی میکنن غلط جلوه میتن و قضاوت های غیر مسئولانه و غیر عادلانه نسبت به برادران دولت اسلامی و نفس این حرکت و این تشکل راوا میدارن جزاکم الله خیر استادان گرامی از اینکه معلومات های را ارائه کردین یک چیزی را که ما هم اضافه بکنم چون در روزهای نزدیک از رسانه های کفر وقت که مشنویم در رابطه با جنگ های فلوجه میگن که ما تقریبا سی سه فلوجه را تحت تصرف خود در آوردیم این ای همه تبلیغات سو تبلیغات غلط است در حقیقت تعداد کثیر از مرتدین و مشرکین مردار شدن و روانه جهانم شدن و مجاهدین الحمدلله در سنگرای خود محکم و در مقابل دشمن می جنگن. چون ما در مدقای قاخیر برنامه قرار داریم سوالات زیاد باید متوجه استادان گرامی می ساختیم اما وقت کافی نداریم با شنوانده ها الله حافظی میکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ای تاریخ ما برگشتیم با جهاد و عزت برگشتیم با احکام قرآن و سنت و با نهج سلف صالحین برگشتیم میخواهیم خواهیم را در عصر فتن و فساد با عدالت الهی ممنوسازیم سازیم پس ای تاریخ از عصر فساد محزون مباش از طغیان و از حکومت های ظالمان محزون مباش محزون مباش ما برگشتیم و انشاءالله هر پارچه ورقت را با خونهای متحر خود رنگین می سازیم، برگشتیم شنونده های راژیو صدای خلافت این بود داشته های برنامه امروزی ما